گَر شاودی افیستان بدان میدانی کاوسنده دلی را به غمی بنچانی در ماتم عقل خیش باشی همه عمر، میدار مصیبت که عجب نادانی گرزان که به دست آید از می دومنی، می خورد به هر محفل و هر انجمنی کان کس که چونان کرد فراغت دارد از سبلت چون تویی ریش چمنی گداست حد مغز گندم لانی و مید می دومنی رانی ایرانی، بالال رخی نشسته در ویرانی، عیشی باودی نهده هر سلطانی. گر شهر شوی به شهر شر و ناسی، گر گوش نشین شوی همه وسباسی، بهزن نباود گر خزر و الیاسی، کس نشناسد تو را تو کس نشناسی.